بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم درس روزی ما و شما درباره نیازمندی انسان به دین هست. اکثرا برای انسان این سوال پیدا خصوصا برای انسان هایی که مثل ما و شما در 2006 زندگی میکنیم که چون جهان به شکل یک کوچک کوچکتر و کسای زیادی در دنیا هستند که دین ندارند و کسای همستند که اونا ها متدارید هستند ما شما باید در این باره تحقیق بکنیم که آیا ما نیازی به دین داریم؟ و میتونیم بدون دین هم زندگی بکنیم؟ اگر نیازی به دین داریم، چی نیاز من دی داریم؟ دین کدام زبوتهای ما را میتونه که پاسخ بگوید؟ دین در کدام بر ما منفعت داره و در کدام ها منفعت نداره؟ ای موضوعی که امروز با شما میخوانیم و ای موضوع تحت عنوان نیازمندی انسان بدین میخوایم. در قسمت اول وقتی که ما با شما از نیازمندی انسان بدین صحبت می کنیم و هر صورته فردی نیازمندی های را میگه که انسان به شکل فرد به احتیاج داره مثلا انسان نیازمند است به اکسیژن نیازمند است به غصا ضرورت داره به لباس ضرورت داره به نوشیدنی ها این نیازمندی های فردی امسان است که اگر وجود نداشته باشه برای انسان یک سر سلح مشکلات رو بار میره که این نیازمندی های فردی را دانشمندان به دوزسته تقسیم کردن که نیازمندی های فردی مادی و نیازمندی های فردی معنوی در بخش ماددی ما شما گفتیم مثلا انسان من اینسان با آب زرده دارد انسان با کسوس زرده دارد. انسان با اکسیژن زرده دارد انسان با کربن زرده دارد این یاسمانی های مادی وجود انسان است. در بخش معنایی انسان یک سلسله زرده های داخلی داره که باید اطمینان داشته باشه، آرامش روحی داشته باشه، آن دیزی باید تضمین باشه. به این شکل می که دو ضرورت است که انسان مجبور است که باید از نگاه مادی و محنوی این نیازمندی های شتن بخش دوم نیازمندی ها یا ضرورت های انسان در بایی می باشه. وقتی وقتی انسان مثل که دانشمند اگه اجتماع انسان یک موجود یا یک مخلوق اجتماعی است نمیتونه خارج از اجتماع زندگی بکنه وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنه بدن این انسانی که در اجتماع زندگی میکنه به یک از ضرورت های اجتماعی مثل ضرورت انسان با فامیل ضرورت انسان با مادر ضرورت انسان با پدر ضرورت انسان با اولاد ضرورت انسان با مکتب ذرات انسان با کانتون با میشه که انسان با قانون با پلیس با دولت ایتمومش ضرورت های اجتماعی است که یک انسان وقتی در اجتماع زندگی میکنه به این امور نیاز است. در حقیقت های انسان این نیاز عالی میباشد. نیاز های عالی یک سلسله نیاز است که انسان در وقت که نیازمندی های فردی و اجتماعی از خلاص شد بلاخره اینمی انسان بر از یک سوالات پیدا میشه این سوالاتی که بر انسان پیدا میشه مثلا به طور مثال وقتی که مادر یا پدر بر روز جمعه طفل خدا لباسای و که لباس های منظم و باید که اینکه را لباس پرشاندند اینا Uh, خوب گروپ سرشوشت لباس پوشان با بود از از مبادر یا پدر خود پرسان میگه که یا آمادگی ها برای چی ما هدف کجاست خالی کس میرین آروسیست کدام جای معماری خبر هستیم؟ بالاخره چرا اینی سوالی که یک طفل از والدین خود میکنه انسان هم وقتی که با نیازمندی خود در وقت در دواستیپ.رو و دواستیپ.فکت و دواستیپ و دواسطی ایکس و ایکس و دواسطی ایکس زرو ایکس زرو هدف انسان اینمی دنیا انسان اینمی دنیا هست این سوالی که در بنام دنیا هست این سوالی که نهایت ما نهایت عمل ما به خود ان اگر ت و توسطستیه اککسدام زندگی دیگه هم وجود داره به هدف میشه یا تمام هدف انسان اینمی دنیا هدف انسان اینی دنیا هست این سوالی است که در به نام نیازمندی عالی میگن کهفر قدیم ودار دانشمندار و فلسفه را در قدیم و در اصر ها افه است است اگر ی نیازمندی انصاب ثرات های فردی اجتماعی و عالی موی و عالی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 در قسمت موشیدنی ها و در قسمت جنس در این بخش دین چی نقش داره؟ اگر دین باطل باشه بعضی ادیان باطلی هست که او رو انسان ها ساختن فکر میکنه وقت, ای وقت ای انسان می باشه که بخش مادی وجود خوده انکار بکنه نخوده، ننوشه، ازدواج نکنه ولی دین مقدس اسلام دین است که مادیت و معنویت دو بخش دو بالی یک پرنده فکر بیکنه انسان نمیتونه مثل که یک پرنده نمیتونه که باید بال پرواز بکنه انسان نمیتونه که تنها با مادیت و تنها با معنویت مجبور است کنه مجبور است انسان ار دو بخش ها متواصل پیش میبره از این خاطر ما شما همیشه در نمازهای خود خداوند متعال برای ما شما تعلیم داره که در نمازهای خود چی میگه ربنا پروردگارا آتنا ب ف دنیا حسنه نیکی ها و خوبی های دنیا را و فی آخرت حسنه یعنی اینکه که نیکی های دنیا و فی آخرت حسنه و نیکی های آخرت و قنع عذاب نار و خدای مر از عذاب باتش نجات به برای وقتی که ما میشه دعا میکنیم دعا نمیکنیم که خدای تن بر ما آخرت را و این دعا را هم نمیکنیم که خدای تن بر ما دنیا را بتی بلکه ما چی میکنیم؟ بلکه ما دعا میکنیم که خدا هم بر ما دنیای خوب بتی و هم آخرت خوب بر ما نصیب بکن از این خاطر یک مقوله از که این از علمای قبلی خلاصه دی نگرفتن میگن دین چی پسند میگه میگه دین میگه که علما دنشواند های میگه که د برای علم لی دنیا که, که انکه تاییش و ابدن برای دنیا ای قدر کار بکن مثل که تو همیشه زنده هستی همیشه باید کار بکنی درس بخوانی، زحمت بکشی و علم لی آخرتی که, آخرت که که انکه تموت و قدن واری برای آخرتت اتو کار بکنی مثل که فردا میمیری وقتی که این که در نزد انسان باشه متوازن پیش میرن، هم مسائل دنیای خود در نظر میداشه باشه و هم آخرته. دین مقدس اسلام در قسمت مواد در خوراک چی میگه؟ بخوریم یا نخوریم؟ دین مقدس اسلام میگه شما وقتی که میخاید بخوریم خوراک دین مقدس اسلام توجیهی مستلزم میتونه کاوجی مثبت میکنه. توجیه مثبت یعنی چی؟ یعنی دین مقدس اسلام میگه شما بخوریم مثلا فلانی حیوان گوشت بخوریم فلانی حیوان گوشت نخوریم. فلانی, فلانی می که را بخوریم، فلانی را نخورین اینینی که میگه ایره بخور مثلا گشت گوسفند رو بخورین گوشت پشاکه نخورین و گوسفند وقتی که میخون با ایره زبحه بکوین تا که خونه ازی بریزه بعد از صبح ایره به شکل درست بختم کوین و بخورید اخروی میشه توجیه مصبت نصیب انسان سال چی نتیجه تام مسائل سعادت و پد دنیا و اقای سعادت یعنی مسائل از زندگی مساولی میشد از زندگ و آخری بسعادت و آخرت یا و آخرت یعنی ای به این میشه. سعادت اخراوی میشد مردم گفتن که و سعادت اخراوی میشد شما ای گفت که ما که ما توجیه مصبت دین اصلا من ضرورتی به توجیه مصبت دین ندارم بر قسمت خوراک ها چه قسم ضرورت ندارین؟ گفت ما مثلا شما میگی گوشت پشکه نخوریم مثلا در چین گوشت پشک فارم جور کردن و گوشت پشک مثل فارم دیگه حیوانات استفاده میکردن بلاخره من نمی فارم شما معاصلین ساینس هستین خودتر می فارمون من سه چار ماه پیش از طریق دیش دیدم که در چین تقریبا دو میلیون و سی میل کار از بای میبهی مرز سارس پرس فارم پشکار از بای میبهی مرز بای میبهی اتارناکترین مرز هست از گوش سارس که خطر مورتری مارازوست از گوشت و پشک به انسان انتقال میکنه از این خاطر ما مجبور هستیم که خوردن گوشت و پشک قطع بکنیم تا غیر از ما به مارزهای مختلف یعنی سعادت دنیای ما از بین رفت وقتی که توجیه مثبت دین در نظر نگرفتیم در قسمت نمشدنی ها هم دین مقدس اسلام همین عین توجیه مثبت را میکنه و توجه مثبت این باز هم موجب سعادت زندگی دنیا و آخرت میشد در قسمت اون ها مثلا نوشیدن آب برای انسان اجازه است که باید انسان آب بنوشه برای انسان اجازه هست که مثلا اینی انسان باید آب میوه بنوشه ولی بارش که شما باید شراب نخورید یک تعداد مردم ها گفتن که ما شراب نمیخوریم ما شراب میخوریم شراب خوب چیز خوب است ولی بالاخره وقتی که اینا شراب نوشیدن نتیجه شی شد که داکتر ها گفت که بسیاری مرضای ها مرض خطرناک کنسل ها سرطان ها از روشیدن شراب به انسان انتقال میکنند. از این خاطر، انسان باید از خوردن شراب دوری بکنند در قسمت جنس، دین مقدس اسلام میگه که وقتی که شما انسان هستیم، اینه امکان کرده نمیتونیم. بلکه یک قسمت هم توجیه مثبت است که توجیه مصبت در قسمت جنس سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان بیکنن خب یک کس میگه که یعنی توجیه مصبت جمس یعنی چی؟ یعنی این که انسان باید ازدواج بکنن از طریق ازدواج خانم داشته باشن و استریک خانم و فامیل، صاحب اولاد، صاحب زندگی شدن و نورمال زندگی خدا پیش ببرن یک فامیل مرز هم جور بگنن، مشکل جنسیش هم رفه میشن و در مشکل اجتماعیش هم رفه میشن فامیل و خانواده هم درست و مرز پیش میرن و از مرز های مختلفی که بسیاری این مرز ها استفاده مادرست جنس بهبار مع این از ب ما ما که ما ما اگر قبول نمیکنیم قبول نمیکنیم ما میخوایم که برام آزادی امسان آزادی رو اعلام کردم مثلا ما ازدواج پای خير که شما میگن ماشرو نیست ازدواج های مثل از ازدواج مرد با مرد ازدواج زن با زن حتی ازدواج انسان با حیوان این موضوعات اینا مطرح کردم و گفتم که شما که یه قوره می‌ذارید کهpageX شما درست نیست خب وقتی که که درست نیست بر ما شاعر ما بر شد گفت که صدها چراغ دارد و به راه می‌رود صدها چراغ دارد و به راه می‌رود بگذار تا که افتاد و بینت سازای خیش و خداوند متعال چی میگه خداوند متعال جل جلاله میگه و من اعرض عن ذکری لهو له معیشه هر کسی که از حکم ما از قانون ما سرپیچی میکنه بر زندگی بسیار خطرناکی را نصیب میکنیم خب اینو وقتی که آزادی جنسی رو اعلام کردن نتیجه آزادی جنسی از اینو چی شد نتیجه آزادی جنسی از این ای شد که یک تعداد امسانهای کار با استفاده از آزادی جنسی از انسانیت خود برآمدند رفتن در جنگل های اروپا با امرای شادیها هم جنس شدن وقتی که اینا با امرای شادیها هم جنس شدن دکترای تو به خودشان برشان گفت که برادر خطرناکترین مرضی که ایچس است فیلن جهان امروزی را جهان متمدن امروزی را امروز که انسان میتونه که از نگاه تکنیک مادی به محتاب بره دیگه سیاره ها را تسخیر بکنن اینوی انسان اقدر پست شد که از نگاه مادیات رفت تا حیوان شد و بالاخره از جنایت انسان مرض ایت اصلا در شادی هاست شما از دکترهای تپ پرسان بکنن که دکترهای تب دری قسمت چی میگن؟ دکترهای تب میگن که مرض ایت اصلا در شادی ها بود وقتی که انسان ها جنایت کردن به حساب جنایتی از اینا مرض از شادی ها انتخال کرد و انسان های بیباری های دینست بلکه ای بیباری های دینست بلکه ای بیباری های, های امروزی که در قوانین ساخت انسان خاطر منفعت خود خواست یک چند لحظی لذت بباره خبر نداشت که مصیبت کلان نصیب از این و این مصیبت مرض ایتز بود بازم شاعر چی صد ها چراغ دارد و بیراه همی رود بگذار تا که افتاد و بیند سزای خیش اونمو حکم خداوند است که و من اعرادم ذکری هر کسی که از حکم ما اعراض بکنه مخالفت بکنه با حکم خداوند متعال فا این نلوه معیشتان بمکار برازی زندگی سخت را خداوند نصیب میکنه و این زندگی سخت چمانه و نحشر و یوم القیامت اعنا خداوند متعال میکه بازن ایمانی انسان در روز قیامت کور خلقش میکنم قال انسان انسا ما يا پروردگارا لما حاجهتنی اعمى خدایا چرا مرا کور خلق کردی وقتی که تو بصیر در حالی که من چشم داشتم در حالی که من در دنیا تو خداوند داشنای که لقد اتت که آیات را برای تو آمد اهکام ما تمام دلایلی که قر... در قرآن بود که مش که عقل تو بود لقد اتت که آیات را تها پسی ای آیات قرآن فراموش کردی و كذلك الیوم امروز خودت فراموش می‌شوی امروز برو برای خود پیدا کن امروز برو برای خود بیس پیدا کو امروز در قیامت برو برای خود اقل پیدا کن و بالاخره این انسان در اوج، در حالت تاریکی زندگی میکنن این است نتیجه توتیه مثبت دین در دیل قدس اسلام در قسمت یا در بخش ماده وجود انسان فکر میکنون واضح است؟ فابید این مقصدش خب سوال رو میشه که در آخر می یاداش بگیرین در بخش معنوی وجود انسان این در بخش مادنی وجود بود آلو پیان ماشمومه در بخش معنوی شاید که سوال بکنه که در بخش معنوی نقش دیر مقدس اسلام چیست از دلائه معنا در معنوییتون ما چی تأثیر میکنه بله نقش دیر مقدس اسلام در بخش معنوی وجود انسان بشکل زل میباشه شما فکر میکنین شما فکر میکنید در یک جای زندگی میکنین در یک ولایت زندگی میکنین از ولایت ها او ولایت دوست شماست وقتی که والی و ولایت دوست شما باشه حتما شما از نگاهی مشکلاتتون احساس راحت میکنین اگر اگر ما وظیفه‌ای داشته باشم والی به من کمک میکنه اگر من مشکل مثلا مشکل وظیفه داشته باشم برای وظیفه بیام اگر مشکل درست داشته باشم امرار را کمک میکنم که در پانتون برم اگر مثلا پلیس بخواه اگه در دو یا دوزی در دو خانیمه تجاز میکنم این والی من را و پلیس ها را وزیفه میتکه تا امرار همکاری بکنم به شکل اینمی توجه اینمی ارتباط انسان با والی از برای انسان یک سلسله راحت و اتمیان قلبی در امون ولیت نصیب می‌گنه در حال که باز هم می‌ترسه که شاید سبا امی والی برطرف شود. ایناله اگر یک انسان یک مسلمان در پالوی که این مسلمان هست این نمی انسان مسلمان این امسان مسلمان, ای مسلمان این می‌فهمه که من افتباط دارم با ذات الله جل جلاله بود ذات الله جلاله بود قسم خصم است. صوت قوی با ارتباطی دارم با صوت قوی یک پشتوونه یک بک بنگلیسی بگم بسیار صوت قوی دارم که هر وقتی که خواستم باشم بر من کمک رسونده میتونه صوت رحمان رحیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان من ارتباطی دارم با ذاتی که او رحمان رحیم است اگر هر وقتی که ما گناه بکنم اگر هر وقتی که ما اشتباه کرم برای من میگه که قل لعبادی الذین اصرفو میگه ای بگو ای بگو ای کسی که تو قرآن از مشانه متعالی بکنی قل لعبادی الذین اصرفو علا انفسیم بگو بر او بنده ما که ایرا اصراف کردن زیاده کردن در های خود لا تقنتو من رحمت الله از رحمت خداوند متعال شما محمد نشین. ولو که هر قدر گناه کردین بازن این درگاه ما، درگه ما امیدی نیست هر قدر که شما اشتباه کردین صحبه کردین تا وقتی که بر شما زندگی داریم تا وقتی که شما زنده هستین شما میترین که دوباره به دربار مدین به معنی انسان میفهمه که ما ارتباط دارم با ذاتی که رحمان رحیم است، ذاتی که قوی هست ذاتی که همیشه با ما است، و ازا سالک عبادی خداوندی مطال میگه که با پیدن باشستم و ازا سهلک عبادی عملی وقتی که بنده های ما در موردی ما پرسان بکرم فا اینی قریب مرمون بسیار نسلی کستم اجیب دعوت دای ادادم ما دعوتی داوطلبرا کسی که دعایی میکنه دعایش رو می پذیرم وقتی که اونا پس به شرطی که اونا هم به احکام استجابت بکنن احکام مرا تطبیق بکنن حکم مرا قبول بکنن و مرا بشناسن از این خاطر من به او بنده های خود بسیار نزدیک هستم خب ایناله وقتی که انسان اینجا وقت در, در قسمت توجیه معنوی اینجا دین معدس اسلام انسان رو توجیه مثبت میکنن یعنی توجیه مثبت چی منا؟ یعنی ارتباط قوی، قوی انسان واکنی با باشن با ذات الله جل جل جل می باشن ذات الله جل جل هم می باشن ای ارتباط قوی انسان با ذات الله جل جل, جل هم نتیجه میگه این مسامی میشه به چی؟ به اتمین قلبی که ای اتمینان نصیب علا به ذکر الله تطمئن قلوب آگاه باشون که به با یاد خداوند قلبها اطمینان پیدا میکنن ببینید ما مردم چه چقدر مردم فقیر هستیم چقدر مردم هستیم که پول نداریم دارایی زیاد نداریم تمام جنگ ها بالای ما تحمیل میشه از کشورهای مختلف کشور ما و شما بسری وقتا مویدان جنگ برای عبر قدرت ها شدند ولی با وجود از این هم ببینید چند نفر سالا خود در افغالستان خود می کشند چون بخو... رو نمی کشند ولی کشورهای غربی وقتی ما بینیم وقتی که اونا گزارشات سواله خدا میتن گزارش میتن که امسال پنج هزار محصل در فلان کشور غربی خودکشی کرد، ده هزار انسان در فلانی جای خود, خود, خود, خود, خود خودکشی کرد و یا در کشور ما و شما کسی خود خودکوشی نمی به خاطر چی؟ بخاطر خاطر که شاعر میگه که، شاعر چی میگه؟ میگه خور و نحق دست از دامن قاتلی بر نداشت، کی رو خون ناحق, ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت دیده باشی در دهای دامان قصاب راست مگرد خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت یاده شما چی به؟ این, این شکلی که قاتل امروزی که قصاب است این وقتی که قتل میکنه دامانش خونالود است انسانی که در این دنیا کسی را قتل میکنه در روز آخرت اینمت دوست و گریبان رزی به خون مردم آلوده هست دیده با جلقته های دامن قصاب و با سعدی در ما یک درست رو دیگر چی میگه؟ میگر, میگر اینسا برای دید یکی کشته فتاده اینسا برای دید یکی کشته فتاده حیران شد دید یک نفر افتاده قتل کشته شدن حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت سر انگشت بدن بدندان خود گرفت گفتا. برای گفته برای گفت که گفته تو کیو کشی تا کشته سو بیزار علی عیسی بر یکی که برای مقتول گفت گفت تا که کی را کشتی تا قصاصی دیور تا بوس کی او را بکشد آن که تو را کشت عیسی دید یکی کشته فوت کرده حیران شد و گرفت بلند سر انگشت بر قا... مقتول گفت گفت او که کی را کشتی تا قصاصی دیور تا بوس کی او را بکشد آن که تو را کشت انگشت مکن رنج بدر کوفتن کس در ورودی کتک امرو انگشت نزن تا کس نکنه ترنج در کوفتانت مشت تا که در ورودی تو را با نزنه از این خاطر رسول مسلمان اطمینان قلبی داره که ذات رحمان ذات عادل، ذات مهربان ذات جبار بالای ظالما ذات قهار بالای قاتلان ورا که اگر در دنیا انتقام از بیش ازی حتما میگیره و اگر انتقام در دنیا نگیره در روز آخرت حتما انتقام از بیش ازی ظالم میگیره به نوعی تین است که برای انسان یک نوع اطمینان قلبی میکنه که برادر اگر تو پلو مختلف میخوری اگر تو داقسه کباب میخوری اگر تو دفتر سرخارت شراب های مختلف مال فراموش نکن که در روز قیامت از یک یکی یک از میشی و نه که میخورم، میخورم خدا کم با چور می خورم. جواب من از دار پیو و پیو و کشارو خود بود بنا ام درزی یک قلبیه اطمینان هست که ایر از خودکشی از اینکه بالای دیگران تجاوز بکنه خوش افتخار میکنه سر با سیکل به درس ده نه به متار صرف از پول حرام بسیاری کساس در خود در های خود افتخار میکنه وقتی که به شاعر میگه مخانید میهمان نشم میگه در خانه توان شبی را ریتوان را روز کرد در خانه ما هم می توان شب را یا در کلبه ما اوت میگنگه در کلبه ما هم می شب را روز کرد بوریا در نیس نقش بوریا افتاده است اگر بوریا نبره نقشش خواهست، لكن ما اتمبار قلبی دون قسمت داریم که اله خداوند متعال بر کی از نگاه معنوی برای امت‌های مسلمان می این دو ماذر قبول می شونم اجازه بحث بخش اجتماعیش ش رو کنم؟ خب، در بخش اجتماعی اینجا در بخش اجتماعی شما میگوین که وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنن فامیل است قانون است مثلا نظام درس و مکتب و است در قسمت بیبنید در قسمت فامیل در قسمت فامیل اگر مادر است پدر است دختر و پسر است خواهر و بیرون است خواهر است است در یک قسمت دین مقدس اسلام بر انسان چی توجیه میکنه؟ در فامیل اول مثلا نقش اساسی فامیل مادر داره. بشارهای دیگه که ماش شما ببینیم که بسیار مردم متمدن هستن مدنیت مادی دارن و چون بخش معنویتشان در نظام اجتماعیشان تحت تاثیری یک حکم الهی نیست وقتی که مادر پیش اصفیت شوه کجا هی اونجا شما؟ شما؟ آسایشگاه اونو مادر خوبه آسایشگاه ببرن در حقیقت یعنی، بکشش از خانه، بعد با یک بانایی رمی برم تز هست. چون فرسند، دختر و پسر، از بادر خسته میشن، مجبور استم که شاروالی اونا را چی کنن؟ شاروالی اونا را تربیه کنن، او رو برشا به نامشه آسایشگاه ماندن. در نوت تان مایشد، خانم شور با هم مشوره میکنه که این پیده چی کنیم هستن؟ بکشش از خانه با اگبانه برن تسلیم شارواله میکنن وقتی که تسلیم شارواله کنن بالاخره این بیچاره به اونجا یا این مرد پیجا ساله او شست ساله بیچاری که از کار افتاده اف اینجا روزهای بسیار بدی رسپری میکنن در نوت تا اونم یک یاداش گرفتیم از انترنت جردی انیس خبر نخل کرده بود که در یکی از کشورهای اروپایی فکر میکنم انگلستان بدن نشت اینه که یک خانم پیش اصفیت چند میلیون دلار خدا بسک ها بخشید چرا به ها بخشید؟ به خاطر این میگیره بخشید که یک روز وقتی که برادر خوارجبازی که فوت کرد آمدن مزدور از این گفت که این خانم پیش اصفیت گفت که وقتی که من در خانه خود اتا در آس... هم نبوده بشت در خانه خود من دوست و یاور نداشتم رو برادر اولادم از ما پرسان نمیکرد و مر تعلق من ماندوران یا بنا کسی که در مریض ها به ما کمک میکرد و دوست نبرند دو تا چایکای سگ بود که بابس در پلی و ستری بودن بودند از این خاطر من تمام دارایی های خود به اون انسان های وحشی که هیچ شن اوطوفتی در مقابل من نداشتن چی جز فامیل ما بودن نسبت به اونام دو تا سیاکا را برتر دانستم و تمام های خود به این سگ ولی باید در دین اومد قدس اسلام سر کردن حضرت پیغمبر صلی علیه و علیه وسلم وقتی که در قسمت مادر میره برای یک مسلمان چی میگه ای مسلمان تو تمام روز نماز میخانی روزه میگیری زکات میدی حج میری به چی هدف؟ به هدفی که خدا از شد خوش و در روز قیامت در جنت الهی باشی در جنت میری ولی پیغمبر صلی اللہ علیه میری که اینمی جنتی که تو میگی می تحت. اقدار امماهات متوجه باشی که اینمی جنت را که تو میخوای جنت زیر پای مادرها هست از این خاطر یک،, یک سرزند مسلمان وقتی که این جنب پیغمبر صلی الله علیه, علیه و سلم و میفهمه که پیغمبر صلی الله علیه و سلام و ما ینتقو عن الهاو و از آرزوها و خواهشات نفسی خود صحبت نمیکنن این هو الا وحی یوها سخنان پیغمبر کلش وحی الهی است بنا چی میکنن؟ همیشه احترام مادر خدا میکنن شما در دی برین بریم دکترایی که بسیار پروفیسور هستن در منزل چهارمون پنجم ماینه خانی شانند مریض میباشه اصاب خوززز میدن تختی پشت خود با چهار منزل بالا میکنن کنن چرا بالا میکنن؟ کنن تا خاطر که توجیه مسلم مادر خود با با میکنن می کنن, می کنن؟, با می کنن. اعضای بدنش بودسال ابن شاه میگیرن می به خاطر ازید در منزل چهارم و اور تداوی کردم و در خانه اور احترام کردم و تا آخرین لحظه ز از کو گفتن مریض گفتن از کو گفتن مریض, مفتن. مفتن. مریض مفتن. می باشه اعصاب خلاص میدن باز این دخترای مسلمان چی می کنن خدا باب باب با با با خود تا را پشلواد میبرن لباسایش جبا دست خود تبديل ميکنن اعضای بدنش بودسای خود نشه ناخودای شده من میگیرن به خاطر چی به خاطر ازی که در از اون اون رو حوا اون رو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مسلم است که الجنه تحت اقدام الامهات جنت زیر پای هست ها است به در قسمت پدر در قسمت پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پدر در از دروازه های است پدر دروازه از دروازه های جنت است اگر می که این دروازه سر تو بسته شود به احترامی به پدرت بکن در جنت چند دروازه دارد یکی از دروازه هایش پدر است در... که اگر احترام پدرت بگذاری اگر قلب تو به تبدیس بری این دروازه جنت در مقابل تو باز خواهد شد قوان از اینشان باز به خاطر از انسان که خود دقیق بوف در قسمت مادر و پدر برای انسان میده که والا تقل لهم اف شما کلمه اف در مقابل مادر و پدرتان استعمال نکنیم اگر مسلمان هستی ایمان داری به خدا و پیغمبر حتی واجه اف را در مقابل مادر و استعمال نکنیم اف چی مانه؟ اف مانایش در عربی یعنی خسته شده برای مادر و پدرت که اف خسته شده بسیار. شاید از گفتن ای کلمه شما دفید از را رنج پیدا شود. قرآن از ایمو که میگه وَلَا تَقُلْ برای زرورا گو وقتی که برای پدر میگه برای خانم برای مردها برای مردها پیغمبر چی میگه ما اکرم ام نساء اِلَّا كَرِيمون خانم خوده و زنها را احترام نمیکنند، مگر مرد با کرامت مرد که شخصیت دارند مرد که تقوا دارند بهترین انسان ها هستند و ما اهانه نمی زنیم این. لئین ما گمان اکبر اکرام و عزت نمیکنم ما اکبر النساء احترام و اکرام نمی زنها زن کریم مگر انسان ها مرد با کرامت و ما اهره هم نه و احرازات توهین داشنم و یو جذب نمی کنم و ما احراز و و نمی ان لئیم مگر انسان های لیم انسان های پس این های بد اخلاق، مرد های بی ایمان، مرد هایی که از سنت پیغمبر دور هستن، اینا اهانت میکنه خانم های خدا. اتا اگر اینهانت با گفتن یک کلمه عادی هم باشه، با یک بد گفتن هم باشه، از این خاطر مردی که میفهمه که موادت پیش خداوند کریم باشم، زن ها را کرامت خانم خدا احترام میکنن. حضرت پیغمبر سلام با حضرت انس چی میگه؟ میگه وقتی که در دا خانه داخل شدی بالای خانمت سلام بدهی با خاطری چی سلام بدهی تا برکت باشه برای تو و بر خانمت به شکل به امر خواهر به امر دختر و کسی که مثلا احادیث رو بخونیم که در قسمت دختر گفته که دختر اگر انسان سوی دختر یا دو دختر داشته باشه و اون را جوان کنن این دو دخترش سبب چی بشه سبب دخول عزیز به جنت میشن در قسمت در قسمت خواهر در قسمت کاکا در قسمت ماما مثلا در روزی که روزی یا اگر امسانی که دین هم می فاند که صدر کارت نباز نفل بخاند در روز اید به ایواز خواندن صدر کارت نفل چی میکنند؟ میره خانی از شریخ خود پرسان از میره پرسان کاکای خود پرسان مامای خود سمه رحم جز دیر مقدس اسلام است ان وقتی که انسان در آداب اجتماعی دیر مقدس اسلام فامیلا دی میرا، می نه مسلمان، فور می له متماسک، فورمیله کی یکی با دیگه با اساس احترام، از این خاطر علتی با شما از نظر مادی بسیار عقد مانده هستین، لکن از دیدای معنویات ارتباط ما با فامیلاهای ما تعیین است. بسیاری وقتا کسای قسم میگن که من یک شف خوره بودم، وقتی که برادرم پسرانم میاد، کاکایم پسرانم میاد، اون نفر مقابل پستان میگه که اینو کی هستند، میگه برادر من از این از این پسر ما چه خوشبخت مردم هستن که مریض شوین باز اقارب تون پستانتون این ارتباط است که دین اسلام چیز گذار در قسمت نظام درس و مکتب و پوهندون اینجا وقتی که ما شما بیبین دین مقدس اسلام برای انسان تربیه میتکیم برای یک نفر تربیه میتکیم شما چند پدر داریم سه پدر داریم یک پدر تان پدر اصلی تان است که از شما تولد شدیم پدر دومی پدر معنوی تون که معلم است که در اول برای شما علف به را درس د همان پدرت است اگر است سمدار است که تو را علف بیت سی را در درس برت میجا و قدر سونی شما کی هسته کسی که شما را دختر خدا یا کسی که با مثلا با شما میده که ازدواج میکنین از این خاطر وقتی که ایننی پدر استادی که در داخل صرف نهه هیچ قسم استاد است از نگاه دین مقدس اسلام او استاد استادی که واقعا مسلمان است چی فکر میکنه ما از خاله خود از پیش اولادای خود از تامین کوچک خود ما در دصف انجه اولادای خردمند است اینجا, اینجا دختران و بچهای دیگه هم هستند که الحمدلله جوان شده او تفلکای مکده خونه هستن او تفلکای خرد هستند ما از پزشکی اطفال پزشکی اطفال دیگه از این پیش پیشی از این های دیگه میرم از این خاطر ارتباطی که در درس است در کوانتور است ارتباط بین استاد و بین شاگرد ارتباط بین معلم و بین شاگرد ارتباط معنویتی قوی است که یکی به احترام میکند حضرت مؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و علیه وسلم من علمنی حرفا فهو مولای اگر کس یک حرفه بر من یاد او بادار ما هست از خاطر باداشته او یک ارتباط صنمیت استادی که به نظر پدر دا داخل سلف و داخل صرف میشه با شاگردای خود مثل دختر و پسر خود فکر میکنه و شاگردی که استاد خود را قسم احترام میکنه که یک کلمه از علی یاد گرفتن ای با بساب او بادار ما هست به ارتباط محکم است که این ارتباط در بین مکتب مدرسه تو همتونی مسلمان ها قائم است اساسش مادیت نیست نره شاگرد مخبط یا نتا شاگرد عظمت تشکر کنه یا نکنه خوش باشه یا نباشه هدف ما این است که ذات پروردگار جمع او از عظم خوشحال باشه و همه وظیفه خدا در مقابل زنا عدوه کرده باشه در قسمت قانون در کسماه قانون وقتی که ما رو شما میبینیم دین مقدس اسلام قانون یارکه اگر ما شما تمام قوانین دنیا را در نظر بگیریم و به این قوانین را بیبینیم میبینیم که چه کدک است هر قانونی که از یا به اساس مظلومیت است که ما رو شما ایراد خواهیم که بعضی قوانوها به اساس مظلومیت است. یعنی سر سرچشمه شده در مقابل ظالم میخیزه و وقتی در مقابل ظالم خیز قانون جور میکنه. بنابراین مظلوم نمیتونه قانونو به طرفان جور بکنه. چون ظالم در آنها قانونش در مقابل کی باشه؟ در مقابل کسایی که سرزیزیم کردن. بنابراین دیگر طرف نیست. در, مقا... در... در... در جهانی مقابل، احیان بعض انسانها یاست که اونا خودخواه هستن. مثلا مثل اکلر، اکلر خیلی گفت که جنس آرژانی کسانی که شماوی صوت دارن، چروز بو... سرخ دارن، میوه زرد دارن، و اینو عزیزمان هستن. اینو کرش انسانها هستن. باید ولی کل جی اینو بکنن. دیگه کل حیوانات هستند سر اینو باید خوردم باشه. بلکه جنگ های جهانی در بین جهان چقدر به اساس اون, اون فکر و نظریه ای ای ای ای ای اقتضاد فاشست هایی بودم که ما قوم و قبیلی برتریت میتونم نسبت به دیگرها من صفحه پونست هستم،, هستم نسبت به تو سیاپوس خوبتر هستم ما زبان اینی چیز است، نسبت به تو بهترتر هستم ما از فلان قریه هستم از این خاطر نسبت به تو برتریت دارم به این به این در بین انسان ها صحب بیرم روز به روز جنگ در بین انسان ها رخ میتونم ولی دین مقدس اسلام چی کرد؟ دین مقدس اسلام خداوند مطالب با یک آیه قرآنی تمام مشکلات اوی مردم اینا خلقناکو منذه کردیم و اون ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم ای ناس ای مردم در این مردم زن مرد شامل است ای مردم و این زن ها ما شما را کوی از یک مرد و از یک زن خلق کردیم و جعلناکم شعوبن و قبارنن و شما را طایفا, طایفا و و قوپن ساختیم لتعارفو و خاطر که یکی دیه تا را بشناسین ایو از فلان منطقسی از, فلان از, فلان از فلان تا منطقس تسکری باینه این چشم این زحانه اکرم ان اکرمکم بهترین شما با شخصیت ترین شما با عزت ترین شما اندالله الله فکر کنن بناز خداوند ان اکرمکم من الله اتقاکم به شما بناز خداوند متعال جل جلاله با تقوا شماست یکی از یک یمنی دین پیش بتش پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام عبدالله ابن سلام و وقتی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند متعال پیغمبر سمجھ که مقام تو از مقام دیگر هیچ از دیگر صحابه هیچ کمی نداره یا حسین اون ساز حضرت وقتی که مسلمان میشن این هر قبر که اذیت میکنن هر قبر که سنگ انسان میسوز می میمونه بازم اون چی چون میفهمه که دین مقدس اسلام دینی است که در تریات یعنی بین یک انسان و دیگر انسان نیست بازم در لحظه نه یا احد احد خداوند یکیست است حضرت زن است که ابو جهل شمشی امو نزیک خراسانیج نمونه و برش میگه که ادکار کو از دین مقدس اسلام چون اون زن که دین مقدس اسلام دین زگ زن ها را نشاب داره از این خاطر قهرمان قبول نکنه برگه قبول نیکنه و اولین شهید اسلام خلیبی سماه همیشه زا و نه که ابو جهل و ابو الله قبول نمیکنن. این قانون اسلامی قانون است که به اساس بی‌طرفی قانون است که رب العالمین ایرخلقره اولین که شما وقتی که میگه نگه الحمدلله رب العالمين حمد سنا و سفر نگفته که الحمدلله رب المسلمین گفته خدای مسلمان ها بلکه گفته رب العالمین پروردگار تمام عالمیان این انسان سیاه باشه سفید باشه زردوز باشه از هر قیم و از هر قبیله باشه اون خدا و خداوند خدای از اون هست از این خاطر قانون انسان اسلام قانون بیترفانه قانون است که برای تمام انسانیت است و قانون است که بنافع تمام مردم هستن این بخش اسماهی رخ با بخش سه که هستن در بخش عالی در بخش عالی دین مقدس اسلام طبیق سوی گفتیم یک سوالات رو برای انسان پیدا میشه ما انسان از کجا آمده ایم؟ برای چی دنیا آمده ایم؟ آینده ایمه چی خواهد شد؟ اگر فکرتان باشه و او هفته گذاشتم او شما درباره باره دکتری دکتوری که امریکایی بود خانده در باره از این یوسف جوسف بود؟ او که من بسیار مال داشتان لیکن باز هم ذهن من نرمال نبود اگلان وجود نداشت در دین مقدس اسلام سوالایی که برای انسان پیدا میشه که از کجا آمدیم؟ برای چی آمدیم؟ کجا میریم؟ هدفت کجاست؟ نهایت در کجاست؟ هم بای این مسائله قرآن عظیمشان یک یک برای انسان جواب میترد انسانی که مثلا با دیپرستا انسان عبارت از یک پارچه گوش میگست خوان اونا میگن که انسان یک یک این رو नोटिस و در مقابل اگر انسان را به شکل موتیما و شما ماوردی مطالقه قرار بدیم انسان چه ارزش و شخصیت نخواد داشت به خاطر چی به خاطر از اینکه از نگاه جسم بعضی حیوانات از انسان که رقبیتر است چشمای بعضی حیوانات از چشمای انسان که رقبیتر است حس شامه بعضی حیوانات انسان انسان‌ها که رقبیتر است مرچه شست برابر وزن خود بار می‌برد انسان چهار برابر خوده بلند نمی‌تونه با این خاطر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 و وقتی که من خداوند مطالبه که وقتی که من انسان خلق کردم و نفختو فیه من روحی و نفختو فیه من روحی من در وجود عزی از روزی که به من اثبت داره تله روح خداوند خب بعضی چیزا رو ما شما باید بفهمید بعضی چیزا رو خداوند به طرف خود نسبت میدن مثلا نگه بیت الله خانه خدا خداوند خود خب از خانه منزه و پاک است کعبه خانه خداوند نیست بلکه به خاطر از چون خداوند به خانه ضرورت ندارد لکن به خاطر که امیشه در عبادت میشه از این خاطر به خاطر عزت دادن به خانه کعبه چی میگن بیت الله خانه خدا میگن یوماست مثلا شتری که شتری یونساله عیسی سلام شتر صالح عیسی سلام بود و را لا قت الله و وقتی ما بسته شما را شماره میگه عبدالله بندی خداوند بعضی از چیزایی هست که نسبتش بخورد اینجا وقتی که نسبت میشه که و نفخته فیه من روحی مع از روح خود خاطر از این که برای انسان روح بسیار پاک مقدس را در وجود از یا که این انسان با شخصیت شود از این خاطر انسان را خاطر شخصیت دادنش برش میگه که تو مثل حیوان وره نیستی بلکه آوات قرآن است که وَلَقَدْ كَرَمَّا بَرِي آدَمَا مَا بَرِي آدَمَا كَرَامَت دادیم ما در بلی آدم راه مقدس و پاتره دواندیم ما بنی آدم خلیفه خداوند روی زمین آدم. تا این حکم خداوند چی کنم؟ در زندگی خود تطبیق بکنم ولی دنیا هدف از این نیست دنیا مثل یک موتر است شما می‌مینید که یک موتر که شما موتر داشته باشین این موتر اتا ای چی میکنن؟ این موتر هدف اتا نیست مطار وسیله است که شما را مثلا از خانه ها و پاهمتون از پاهمتون پس شما را به خانه این در وقت ضرورت این هدف نیست این وسیله هست دنیا هم نسم اینمی موتر است که وسیله شماست که شما میتاریم با استفاده، با کار و زحمت کشی دارید دنیا چی کنیم؟ در آخرت خداونده، جمهت خداونده کمایی بکنیم و نصیب تام شدن از این خاطر وقت امسان در بخش عالی سوالهای میداشته باشه که بسیاری سوال رو مثل که خانم تی بابا میگه که ما از آنها کتاب مطالعه کردم از آنها کتاب رو مطالع کردم من گفتم برطانه یک خانم کتاب میشه کرده بنامه این یک از غرب تو نمی کند؟ کتاب که تو را بازار یافت یک خانوم آمریکایی نوشا کند یکیش خانم بیتی با من است این میگم من اصلا مسلمان نبودم مسیحی بودم ولی وقتی که ادیان مختلف را مطالعه میکردم برای من یک سلسله سوالات پیدا میشد این سوالات عالی که از کجا پرواز چی هدف ما کجاست کجا میرم میگه ده هر دینی که میرفتم رفتم دینایی که در چین است در ژاپن است در هند است در شرق اوسط است کلا زیرا میگم مطالعه کردم مسیحیت یهودیت کل 10000 کتاب را مطالع کردم لکن هر کتاب از ما دو سوال مجواب میداد ده سوال دیگه در ذهن من نمد آخری کتابش قرآن عظیم شان بود که من مطالع کردم تمام مرا جواب گفت و من بلا آخر گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله و خودش نشه که اینک ما به کتابش است که اینک خورشید، اینک خورشید. از غرب تنو میگنم تحلیف خانم بیتی باومن و یک خانم دیگر همست مزفر حلیم از دو ازنها دو هستن که در ایش اصلیش پاکستانیست مزفر حلیم در پاکستان و حالا زندگی در امریکا زندگی میکنه و این خانم اصلا است که شدید. شما کتابی تا نامشه؟ اینک خوشید از غرب تنمی کنمانین؟ بخاطر از ایست که مسلمان ها مثل شایر سابق که میگفت که مواز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را با دیگران بگذاشتیم آله اینا شیر تبدیل کردن چی میگن؟ مواز قرآن پوست را برداشتیم ماخذو با دیگران بگذاشتن. آن شاعر این بوزیشون چی میگه؟ ماخذ قرآن پوسه برداشتن. با وجودی که امام قرآن مطالعه بکنن، قرآنو بخونن، از قرآن استفاده بکنن، اینا صرف از قرآن چی میکنن؟ صرف در سر آرز خود میگه که جانانه یکم قد بغوی میمونه. ا؟ که به جانانه یکم قد بغوی میمونه، اما میتشخیصم از نگاه ادبی غلط از بخاطر اینکه قد گل یک دلستک است. یعنی جانانه هم قد یک دلست است. سلام هر سال باید که قرآن ها از نوشتن اینا در مغز خود جای بتن قرآن بخوانند و ازو استفاده کنن قرآن شریف میبرن داده در داده خیرات و مرده ها یا پوش میتن دست به دست تقسیم میکنن از اینا توصیل نمیکنن اینا نمیکنن اینا روز بر روز قرآن ها ترک میکنن دین و قدس اسلام ها ترک میکنن ولی در خارج در خارج کسانی که تعصب ندارند، کسانی که دانش حقیقی دارن قرآن از اینشان رو به طالع میکنن وقتی که قرآن میخوان میخونن یک دانشمند میگه نگه ما قرآن کریمه که صفحه اولیش رو خاندیم ضرورت نشد که صفحه دومش رو بخانم در صفحه اول قرآن جواب ما یاب شد چرا میگم پروفایسر هستم تقریبا هر کتابی را که می میخوندم میگم که مؤلف کتاب در مقدمه کتاب خودش میگه که در مقدمه کتاب خودش میگه که پروفایسر است. مزیت میخوایم. اگر اسبیش اشتباهی شده باشه شما اشتباهی اشتباه ما را بخشید. میگن نمیگن. همیشه در مقدمه کتاب خود میگه که اسب ما اشتباهی داشتم. تو انسان هستم استم. هستم استم. کتاب خونه بسته بود. در اینترنت دسترسی نداشتم. قیمت اینترنت زیاد بود. نمیتونستم کل کار بکنم. وانی میگه. روزی که قرآن از روشان به دست محمد نگه دیدیم که در قرآن از روشان در صفیه حوالش برخص همه پا گفت این قرآن کتاب است که هیچ شکل نیست از این خاطر میگه مفرامی رو که ایک و پوهندون شخص و انسان نیست کتاب خدای انسان است که از اول بر برمشه میتکه این کتاب به یه نیست عزی خاطر میگه دانشمند میگه من مسلمانم خانم بیتی با من میگه که اونجا مردمای دانشمنده که قرآن به دستشون میرسه و میفهمن اگرچه اونجا دسای زیادی هست جنایتکارای زیادی هستن که اونا کوشش میکنن که, که از مکتب ابتدایی گرفته تا با پوهرتون شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم به منفی در نظر مردم تمثيل بکنن کارتون ها جور میکنند صورت پیغمبر صلی الله علیه و که کوش اخلاق است شما یاد درست خواهد در درباری شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه و, و نمینه یک امسان کاملی بود که او حضرت یکی از خانمهاش میگه که وقتی پسان میکنند که اخلاق محمد چی بود برشمو گفتند که اخلاق محمد قرآن بود اخلاق علی چی بود اخلاق حسین چی بود اخلاق ابوبکر چی بود اخلاق عمر چی بود که اخلاق از اینا اینا قرآن آی متحرک بودن که در روی جهان در حرکت بودن هر حرک کدام از اینا ولی در هست که زیبود که حقیقت بیان مکرن میخوان که راست نگوین شما ببینین ما شما تقاضا میکنن که اون سی دی شیخ احمد دیراتا به مناظرهش این مسیحی شما چیز کنن مقایسه بکنن چند بایبل است یا بایبل نیست که ما شما خود خونید چند کتاب است که اینا میگن که یکی چند صفحه از دیگه چند صفحه اون از نشان مسته که ما شما نشون مسته که ما شما گفتیم که یوسف است میجانید فرمید با یک کلمه این قرآن کلام خداوند است چون میلیون ها انسانی را از قلب میلیون ها انسان به قلب میلیون ها انسان دیگه انتقال شد یک چیز دیگه هست یک کتاب خورترک ایره اگر تانستیر از بازار خریداری بکنن کتاب خطرک است، اما فروغ امو کتاب چی نام سیام پستی که مسلمان شدن آشو کولن آشو کولن آشو کولن آشو کولن یانگ این یک نفر است که خوبش ایره شما کتابخانه کتاب خانه رسالت برین دانه پنج پنج روپی همیتر پنج افغانی را کتاب فروختر میشه پنج این خودش سواپوسته سواپوست است و رهبر کلیسه رئیس کلیسه هاست این ما بگم من با که متخصص بودم در مسیحیت ولی مشکل مده چی بود مشکل مده بود که در کلیسای سفید پروستا رفتن هم میتارستم. <تصفيق> ما تا حجب کردم دیگه قسم خدا هست که من خودش سیاه حمل کردم و بازبرم اجازه نمیده که ده خانش برم این خانه ای من مخصوص صفیت پوست و این مخصوص سیاه پوست ها من گمان از خجالت میکشیدم از این خاطر میگم وقتی که قرآن از نشونه مطالعه کردم دیدم که قرآن از مشان میگه ان اکرمکم اللله اتقاكم ای این دیگه فارسی ما موادو ساق که بگو لا اله الله محمد رسول الله جریان فصل زندگی هزید شما میتوند باید رسالا یک شد در پنج رفع بخرین به نوع دین مقدس اسلام در بخش عالی وجود انسان تمامی سوالای انسان جواب میده که این سوالا که جواب داده شد بلاخره انسان میتره که از نگاه مادی معنوی اجتماعی و عالی به شکل نرمال زندگی بکنه کسا یک سوال داشتن میتونم؟ از طریق ما سوال داشتن. فشی است که ما قرآن از اینوشان از علف تا که تمامش مغز است این ما برداشتیم بالای خود تدبیر کردیم مسائل اضافی که مثلا از قرآن در سر آرس استفاده کردن قرآن شکل اسقاط در دوره ها دور دادن از قرآن مثلا تنها آیه قرآن در جای میشته کردن، این را دادن خانه خود یا قول شریف را گرفته و گردن خود آویزان کردن و به امرای عزیز در تشناب رفتن آیه الکرسی را در گردن خود آویزان میکنند و به تشناب میروند میگه این یا پوست است، این یا بی ارزش است ما ایراد کردیم ما خود قرآن را حقیقت قرآن ها. مغز قرآن که از الف لام شروع تا و ناس ایر ما برداشتید این جواب سوال اولتان در قسمت جواب سوال دومتان که در خط اسلام. اسلام در غرب در رشد است در غرب چند قسم است یک دیداد کسای متعصبین هستند که اونا میخواهند که مردم عام غرب از اسلام بخبر بسازند در صنف در از که محمد صلی الله علیه و سلم میخواد رسومی بکنه به شکل های که رو شما میبینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام به این شکل نبودند خود شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و که یک نفر میگه که یک روز ما بوامبر پیغمبر صلی الله می رفتم یک کس اومد کش کرد از, شا... از از, از... از... سر پیغمبر صلی الله میگه ده شوری پیغمبر صلی الله یک قدیفیه گفتش درشوت میگه چوری کیفیت گردن از اومد این تو کس شد که پیغمبر صلی الله میگه خود نگرون خدا داد ما فکر کردن که اول پیغمبرم عصبانی میشن نگرون خداشناسی در داد گفت خیریت است گفت که بر من فلانیش کارما از بر ما هم کمک بکنیم مبارش گفت که آل فلان خلاص در آینده ان شاء الله براتون این اخلاق پیغمبر صلی الله ده سال در خانه حضرت پیغمبر خانه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و, علی و سلم زندگی میکردم در دو سال بر کردی که میگه آمد از پشت شانی نگرفت بر من گفت که امون کاری که باید گفته بودم نرفتی خاط اخلاق پیغمبر شما بفرمایید اخلاق پیغمبر رو بخورید پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه وقتی که در مجلس میشیش اطانه که پروایش بولد نمیشه تکلیه نمیکرد به خاطر اینکه جارمی مقابل به شخصیت نشه گفت که میزت کدکش اوشق نمیشی تو بر درشتکیه قسمت تکلیه نمیکرد وقتی که یک نفر بعدش دست میواد وقتی که قلو برش میاد تا وقتی که دست خراکش نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه و آله دست خراکش نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه و آله در خانه اون بیچاری که اول به سرش کنده میشد که خوارمش مصوف صرفا خود خودش میبود برای این خاطر شخصیت پیغمبر یک تعداد متعصبینی هستند که اولو الناس که مسلمان شوند اما یک تعداد مردمی هستند که اون جوانایی که در بوامتونو هستن اینو اگر دین حقیقی را بفانند مسلمان میشند وید اینجا عیب دما مسلمان هست که وقتی که ما شما یک غربی رو ببینیم به لزه که اینکه ممثل قرآن باشیم خود قرآن متحرک بسازیم خدا هم مثل از اونا جور میکنیم اگر اون یک گلاز شراب میخورند مسلمان دا گلاز شراب میخورند مسلمان میتونه که در وجود از اون تغییر بیاده ناید خانم فلیپینی در یک جایدی در مکت یکی از کشورهای در شمال افریقا برش گفتیم که خانم میشه که مسلمان شوی گفت من مسلم درم وارم واری گو میخورم وارم واری گو وقتی که بازگسر ما شد دم خیزک ما مایش وقتی اسلام قبول نمیکن عزیق خاطر ربنا لاتجانا فتنه پلللزین کفر خدای ما را وسیله کفر بدگران نگردانی که اعمال ما را ببینن اسلام از اسلام متنفر شد شما در سرکا ببینین وقتی که یک نفر بسیاری مردم افغانستان صاحبی موتر شد لیکن فرهنگ موترداریه ندارن وقتی که یک یعنی زن می بینن یا شما خاطر متاثر شد وقتی ما میتونیم که تاثیر بکنیم که ما خود ما صحابه پیغمبر چی بودن صحابه پیغمبر قرانای متحرک بودن یعنی اعمالشون نشستشان، برخوششون مثل قرآن قران عظیمشون بود از این خاطر تاثیر میکنه همین موثی که من به شما کارخانگی داریم که شما در سایت اینترنت دین و مسلمز برید دیروز ما یک، یک، یک، یکی از معصومین اجازه یاد سن می مسیحی که ما دیدیم یک مسلمان یک زن چادر پوشیده بود، لباس هجاب پوشیده بود، لباس با الهیات دختر مسلمان مرا مسلمان ساخت گویند که این امی دختری که حجاب می پوشن، شخصیت داره حیثیت داره کرامت داره با اصطور وقتی که درس دست میخونه با حجاب دست میخونه این وقت میکنه با اون دختری که در دور ما وسیله و آلو دست شاگردا هست وسیله دست مردها هست تمام روز به رقصه که مردها از وجود از استفاده کنه نگه یک شاگرد دختر مسلمان مرد مسلمان ساخت دشنه ختم شد خداوند متعال جل جلاله او اولین روز در ذخن معاشما که دیدار خداوند است او روز سعادت و معاشما